I barely have a reason to care, and even I notice. Come on, Rick, don't talk about my parents like that. Listen, Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are going to do it. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. Radio Don, resmata no, Puyahualma. Hey yo, yeah, man. Won't you, won't you kick some of that? You know, riders on the storm. Ride, ride, ride. Riders on the storm. Ride, ride, ride. Into this house we're born. Twice. Into this world we're thrown. سلام دوستان صبح و ظهر و بخیر با قسمت دیگه از رایدیو در خدمتون هستیم توی این قسمت ما یه جهش خیلی بزرگی توی تعداد شنونده هامون داشتیم بلوت جادی عزیز که کرده شد آدرس پادکست توی ویبلاگ خودش قرار دادش به واسه همین جهش یه تعداد خیلی زیادی بازخورد داشتیم من خود تشکره بکنم از همین دوستانی که وقت گذاشتن نظرشون رو نوشتن. فرایه چند تا نکته بودش که من لازم بود از این نظرات بکشم بیرون رو بگم. اصلی این بود که خیلی گفته بودن اگه میشه بپرس طرف با چه معدلی رفته نمره تافلش چقدر بوده و یه سر مسئله ریزه دیگه. به همچین مسائلی و پرسدن همچین سوالاتی از روز اول قصده هدف این پادکست نبوده. در واقع میشه گفتش، یه جور نگاه دیگه راجع به همین مسائل شما تا دلتون میخواد توی اینترنت مطلب هست. میتونید سایت اپلای ابراد برید. قسمت های مختلف هزاران صفحه تو فرامش مطلب هست راجع به چه کسی با چه معدلی با چه نمره‌ای تونسته کجا اقدام کنه. اون چیزی که شالودو و تفکر این پادکسته اینه که ببینیم این نگاه بذاریم کنار حالب عظیم بود به ماجرا نگاه بکنیم که اون کسی که داره میاد خارج از کشور داره میکنه. سه تا نمره و چهار تا مقاله نیستش یه آدمه که داره یه همچین تصمیم بزرگی رو میگیره در هر حال این اون نگاهیه که من ضعف وجودش احساس میکردم و کنجکاوی اصلی خودم بود برای این تصمیم گرفتم که روی دست بذارم امیدوارم شما من همراهی بکنید توی این مسیر یه تغییر دیگه که من دادم این بودش که توی این قسمت یه مسیر ارتباطی سر کردم به وجود دارم بین شما و فخری من باش مستند کردم یه بات تلگرامو قرار دادم که میتونید از الان تا زمانی که من قسمت بعدی رو با فردادی دیگه زفت بکنم از طریق اون با تلگرام با کسی که تو این قشنام داش مسابقه کردم در تماس باشید آدرسش داخل سایت و خود کانال تلگرام قرار میدم دکتر آخرام اینکه من تجربه خیلی زیادی تو زمینه گسترش دادن و پخش کردن کلام این جور مسائل ندارم کسی که تو این زمین تجربه دارن یا فکر میکنم میتونم به من کمک بکنم که این رو به گوش افراد بیشتری برسونم ممنون میشم نظراتشون یا اگه به نظرتون همکاری بکنن نحوه همکاریشون رو به من اطلاع بدن تا به شما بتونیم مخاطب پادکست رو بالاتر ببریم من تاکید دارم روی موضوع چرا چون پشتوانه تعداد افرادی که مخاطب این پادکست هستن من میتونم برم و با افراد جدیدتر که تجربه تو بیشتری دارن و پختگی بالاتری تو مطلبشون وجود داره صحبت بکنم، با آنها رو جذب بکنم که بتونم باهاشون صحبت بکنم و نتیجه کار کارو در اختیار شما قرار بدم. به عنوان یه نمونه موفق از این همکارا میخواهم حتماً از بهنام عزیز تشکر بکنم که وقت گذاشت و یه لبای خیلی شیک برای رادیو دل تعریف کردش. نکته دیگه‌ای نیستش. برنامه رو سمت دوش بدیم. امیدوارم لذت ببرید. قسمت دیگه از رادیو دول واتنون من پویا رو دارم پویا دوران کارشناسی دانشگاه شیاز بوده کارشناسی ارشدش یه مقدار دانشگاه من خونه بود وسطش ول کرد الان رفته آلمان دانشگاه تو کوبلنزی درست میگم؟ آره کوبلنز دانشگاه کوبلنز, دانشگا کوبلنز درست میخونه و در خدمتش هستیم چطور پویا؟ قربونه تو چطوری؟ من منم نت... خوبم مرسی نم. ممنون مچکر چکار میکنی؟ نم. امتحانام، اونم اوری دیگه رو ببین خلاص بشین. آره. تو هم صحبت می‌کردم، هم درگیر امتحان بود. اونم تو ایتالیا، از ایتالیا تا آلمان همه درگیر امتحان. آره، همه درگیر امتحان. ما که یه 15-16 سالی از درگیر امتحانی، من تمام نشد این دیم وقتا آره، از این لحظ واقعا 15-16 بیشتره. بیشتر حالا دیگه از وقتی خودمونو شناختیم دیگه درگیر امتحانیم میگم یه مطار میخوایی پیشنه بگو اگر کجا اومدی چطوری مجره پیشنه من قایم شهر به دنیا اومدم اونجا تو حال از شروع بکارم و دبیرستان ریاضی خوندم بعد کنکور دادم مثل بقیه بعد منطقه دو بودم کامپیوتر دانشگاه شیراز قبول شده بعدم کامپیوتر دانشگاه شیرازم پنج بعد پنج سال تموم کردم بعدش کنکور کارشناسی ارشد دادم غزبین قبول شدم مثل خودت غزبینم دو سال خوندم حالا بعد دو سال دیگه تصمیم گرفتم انصراف بدم و اپلای کنم برای دانشگاه آلمان و ازانم که آلمانم آها آه <متحدث> کیت تصمی گرفته شید؟ برای معاجرت افتان بکنی؟ از چه زمانی؟ برای معاجرت، ولی من اون که کنکور دادم اصلا فکر نمیکردم که بخوام بیام این سطح یعنی کنکور رو با این هدف دادم که کارشانسی هرشت رو اونجا بخونم و بعدش حالا یک کاری کنم <تصحیح> ولی بعد همون سال اول کارشانسی هرشت به این تصمیب نت... سال اولش اصلا نرزید یعنی تابستون قبل از اینکه برم خب باید چند تا از بچه هم حرف ساده همون که مشورت گرفتم به این نتیجه رسیدم که بهتره که با سردام تحصیل با کلند کار و اینا برای اون سمت و بعدم که یه ترم خوندم دانشگاه غزبین البته ترم اول مرخصی گرفتم و ترم دوت دیگه کامل به این نتیجه رسیدم که این فایده نداری اینجا یه جور وقت تلف کردن و سربازی و عقب انداختن یعنی پشتش چیزی نیست دیگه تصمیم گرفتم شانسامو امتحان کنم دیگه یه بار سال اول تلاش کردم نشد همه چی ریجکت شد بعد دیگه سال دوم بری خب درست حسابي طرف کردم دو ثابت میشم دیگه من به عمرم کسی که شاهد تلاشات بودم واقعا من میگم پوشه قابل تحسین بودش یه چیزایی که برگردن انقدر چی شو کامپیوتر زدی حالا من کامپیوتر شناخت نداشتم من کاملا شانس کاملا قبول شدم یعنی من در ریاضیم خوب بود خب در بیاسم بد نبود نه عالی و اینا دو کاردم دوست از شیمی هم بدم میومد دوست داشتم یه رشته باشه که شیمی نداشته باشه بیشتر ریاضی باشه مهندسی هم باشه بین برق و کامپیوتر من اول لشتم میزادم بد بعد بابا اومد گفتن کامپیوتر <تصفيق> بعد هم دیو شد که ما کامپیوتر آبوشه ها <تصفيق> یعنی حتی اونم خیلی خارق العاده‌ای نبود. کاملاً شانسی به هیچ من تو فقط میدونستی چی دوست نداری به نظر من فقط میدونستم چی دوست یه کوچولو هم گفتم ریازی دوست داشتم، دوستشونو رجیستر بکن. حالا کلاً الان کامپیوتر چطور راضی هستی، نیستی؟ راضی؟ الان چه دیگه بعد از سال دیگه راضی هم نباشیم، باید دیگه چیکار. دیگه روش به خودمون اگر اون بریم توش افتادیم دیگه والا خوب بعد دیگه بریم جلو ولی خب رشته خوبیه رشته ای که به روز خودت یا اپدیت نگردی یه ذره هیجان داره یه ذره اون روتین بودن رشته دیگه ممکن نداشته باشه بعد خیلی جام کاربورد داره مثلا بین رشته ای خوبه ما راضییم والا ببینیم چی میشه کلا دور کارشناسی ارشد چطور بود یه مقداری راجع بگو دانشگاه چقدر برات داشت چقدر خوب بود شیراز خوب... شیراز خوب بود یعنی باز از شیراز هم درست خیلی نقطه زرفتاش ولی خوب بود من راضی بودم یعنی منی کسی هیچی از کامپیوتر نمیدونستم و حالا به همین سطح قابل قبول رسوند خوب بود من راضی هم دانشگاش خوب بود هم شرخش خوب بود هم خوابگاش خوب بود منی از این دو پنی سالی شیراز میگم باید که مشکلات زیاد بود ولی باز راضی هم درکار اون دو سال قصد دوستان فراموشش کلند چون اصلا فاجه بود یعنی اصلا نمیشه توصیف کرد در درچه از فاجه بود فرض کنه شما یه قبول میشی کلن پنج دوست رو داری یکیش هم که خود بهتر بزنیم آقایه آقا نام میوریم ولی خب اونجا رو که دیدم خیلی خورت دوزبم راستش باسته ایک از مهمترین دلایلی که یعنی انگیزه داد بهم همین بود که اونجا رو دیدم اینجا اصلا راضی نبودم دیگه الان امادم اینجا یه سال اینجا دیگه اومدم. که میشه پس وای جه تشکر کرد آنچنان جهننی پیش رو برپا کردن که تصمیم گرفتی بزنی بیرون از این لحظ خیلی خوب بود یعنی یک درصد اگه ما شک داشتم که دارم کالا اشتفایی میکنم این شک را از بین بوردنگ آمدید خیلی. این فقط تو وهله اول چرا اومدی هر بگیری؟ بالا من عرشت اولش که خب لیسانس که تمام شد من هیچ هدفی ندیشتم نیم دیدم که هیچ نه اونقدر آمادم که کار کنم نه اصلا نمیدارم میخوام چیکار کنم بعد دیدم از ده طرف سروازی هم دارم گفتم خواهد دقیقه که دو سال برای خودم زمان بخرم توی این دو سال بشنم ببینم میخوام چیکار کنم یعنی <تصفح> در که عرشت دادم و یه زرم جمگیر بودن دیگر به همه دادم مام دادیم بنزات چیزی داره واقعا ارشد مثلا خوندنش تو ایران حالا ارشد تو ایران میگم از چه هدف داره اگه هدف بده اینه که یکی مثلا محیط آکادمیک دوست, دوست داره دوست داره بره مثلا پیشتی دی علاقه داره به این چیزه آره ارشد وسون خوبه ولی خب نکته اینه که حالا کجا باید ارشد بخونیم بعضیام خیلی تاثیر داره دیگه مثلا تو ارشد اگه هر من برات علاقه علاوه باشی مثلا یه جایی مثل قزوین باشی خب علاقات حدوست نیدی بعدی شش بام <تصفيق> ولی خب فرق داره مثل کسی که عرشد دانشکا شریف میخونه کامپیوتر خب اون خیلی فرق داره و بعدن اینکه به این دوره صحبتی نداره قسمت بعد میخوام راجبه این بپرسم که فرایند مهاجرتت چطور بود اگه من میگه صحبت که هستم خیلی باشه, باشه. پس بایم قسمت راجبه این چندشون مهاجرتت صحبت کنم <تصفيق> As soon as you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all Until the pain is so big, you feel nothing at all Working class zero is something to be They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. And tell yourself crazy you can't follow the rules. خیلی خوب قسمت دوم صحبت رو داریم با پویان پوجو بریم آجارژا مهاجرت اینجور مسائل صحبت بکنیم چی شد آلمان چی شد آلمان که ما خب چون عمو اما اینجا زندگی میکرد میادی بزرگترین بزرگترین این که خب خیلی تاثیر داره تو یکی داشته باشی یه کشوری که میخوای بری یکی این تاثیر داشت و دومی که خیلی اون مهم بود چادرزر ولی مهمتر این که اینجا دانشگاه شهریه ندارن یعنی شب پول شهریه ما نمیدیم بقید پول زندگی خب بی خودمون باید در بیاریم. ولی خب چون شهری نداشت خب خیلی از اینش کمتر میشه از کشورهای دیگه. یعنی این دوتا خیلی تر. و همچنین اینکه که خب نزدیک به ایران رفت آمد راحت خانواده اگه بخوام بیان. به تو اگه بخوای به این رو دیگه مجبوع اینا من آلمان رو انتخاب کردم. مجموع این سه با هم این سه دروقت. این دیگه سفر به ایران بودن، من یه بار به دوستم گفتم, گفتم گفتم یا مثلا با شوتور قراره بیاری با هواپیما میره دیگه. حالا مثلا اگه تو می‌رفتی کانادا فرقش دقیقا چی می‌شد؟ فرقش اینه که یکی اینکه اون موقع تو کانادا و آمریکا سفارت نداشتن تو ایران. بعد خب سخته دیگه مثلا یه موقعن خانواده بخواد بیاد، سخت بره یه کشور دیگه مصاحبه یا بعد پول بلیط هم گرونتر میشه. نه این تنها عامل نیست که بگی فقط خب همین یه عامل من میرم آلمان اینو بذارید در مجموعه بقیه عواملی که تو ذهن آدمه خب این یکی از چه دلایل تاثیرگذاره ولی خب تنها عامل نیست اگه بخوید فقط این عامل رو در نظر بگیری خب واقعا آره فرقی نمیکنه باهامون فایدی بیادینی یه چیزی الان در دانشگاه رایگان یعنی اینکه تو شهر مثلا دانشگاه سارا ایران دیگه. تو بدون اینکه شهریه بدی میرسید کلاس آره بدون اینکه شهریه بدیم میریم صرفا سر... کلاس فقط, فقط اول یه پولی میدیم بابت کارت دانشجویی چون با این کارت دانشجویی پول اتوبوس و این قطار میتونیم سوار شیم بریم با این میتونیم با این کارت دانشجویی بلیط هم حساب میشه یه پول مختصری میدیم بابت اولش ولی خب نه یه پول مختصر برای این سمی سلتکت که به عنوان بریت اوتوبوس و حساب میشه تو همین ایالتی که ما هستیم این فقط پول مختصر برای این بینیم یعنی شهریه نمیدیم بعدم اینکه آن تو برای اینکه بری اونجا با استادا در تماس بودی چطوری اپلای کردی نه آلمان برای فوق لیسانس نیازی نیست با استاد در تماس باشی اگه ممکنه یه سری شرایط خاص حالو با استاد در بزنی و معمولا جواب نمیدن چون ادمیشن کامیتی کمیتی با تست میکنه اس ام میگیره که یعنی باید مستقیما از دانشگاه اپلای کنی برای فوق لیسانس این اینا من با استادی در تماس فقط برای دانشگاه اپلی کردم تو بهتر نبودش مثلا تو اینجا بگیری بعد بری دکتر اونجا بخونی چی شد چی شد این بهتر بودنش خب بس ای به هدف خودت داره دیگه مثلا من چون دوست نداشتم دکتر رو بخونم یا بلافاصله دکتر رو بخونم اگه اونجا ارشد میگرفتم چون سربازی دارم یه قانونی تو ایران هست که برای یک مقصد دوبار بار نمیدن یعنی من اونجا مستر میگرفتم، نمیدونستم دوباره بیام اینجا مستر، باید حتما اقدام میکردم برای دکترم ولی خب وقتی یادم فوق لیسانس بیاد اینجا با توجهون که شهریه نداره، خب تا دستش خیلی باستر میشه برای فوق لیسانس، آپشنش خیلی بیشتر واسه همین من فوق لیسانس اونجا نگرفتم. بعد با در کنار شرایط دیگه که مثلا من حساب کردم که اگه اونجا بمونم تو قزوین، چیز درست حسابی در نمیاد به عنوان مثلا تز کارشن سیاشت که به درد بخوره یا مقاله ای از سوش دارید که بتونم برای دکترا اپلای کنم یعنی باز بازم تاش چیزی نمونه. واسه می دست می گرفتم واسه ارشد بگم کنم. گرفتم. بعد چطور دانشگاه رو پیدا کردی؟ دانشگاه تو آلمان میخوایم پیدا کنیم یه وبسایتی از داد دی ای ای پی که این یه قسمتی داره چون میتونین دانشگاه رو سرش کنین یعنی به اون رشته ای که میخواین رو بزنین خصوصیاتی که میخواین لیست دانشگاه میاره دیگه اونجا میتونین اسم دانشگاه رو میگیرین یه سری دیسکریپشنی هم نوشته که اینا راجع به دانشگاه چی میخواد رشتهش یه اینا ولی خب بزنین که بگید تو سایت دانشگاه من رفتم تو سایت دانشگاه نمو کردم بعد یه از هم از اون لیست وزارت علوم رو نگاه کردم که دانشگاه مجاز هر کشور داره اونم خوب بود چون پشنگ به کتگوری دانشگاه هر کشور داره یه ذره تولک میکشه دانشگاه پیدا کرد ولی خب میارزه اگه واقعا کسی بقید بیاد این دوتا کار رو انجام بله میارزه یعنی هم تو سایت رسمی که دانشگاه آلمان دارن بره هم از این طرف وزارت علوم نگاه بکنه بندی و اعتبارشون به چه ب البته خود من رو تاوندی که به کنار همه دانشگاه اونجا هست اگه میتونی اسم دانشگاه سرش سرچ خب سایتش میلمی نگاه میکنه این من این کارو کردم این داکتوری گفتی ماجرش چی بود این مؤسسه داد یه موسسه یه دانشگاهی اینجا قرارداد داره با دانشگاه آلمان از یه طرف هم اسکولارشیپ میده یعنی اسکولارشیپ‌های مختلف داره میتونه اپلای کنه یه افراد میخواد اگه میخواد اقدام کنه برای اسکولارشیپش از این طرف هم یه درمان شبیه سرچنجینیه که میتونین بگردین دنبال دانشگاهی که میخواین تو اون رشته ای که میخواین چما خوبو به درد خور آره به به درد مخورد بعد یه چیز تو چرا برای گرفتن بورس تا نکردی اصلا میتری؟ بورس یعنی از بگیرم فان بگیرم آره آره خب توی اینجا چون میگم تو شهریه نداره بیزاره فاند سخت میدم برشت بعد اگر هم بدم من کوتاه مدت شیش اینا میدن همیستان دارش که خودمونم داره تا شیش ماه دیگه گفتم خب دیگه این کار نکنم دیگه یه زمان دیگه سریعی ندر ندم دیگه نشد دیگه اقدام نکردم ولی خب اگه یه بخواد میتونه گزینه گزینه خوبیه رو چه معیار اینا فان میدن؟ معیار که میگن خب مداره که تو بفرست دیگه حالا اون چه تصمیم می گیرم دقی من نمیدونم حالا رقابتیه ریپ کنم رقابتیه این شما مداره که میفرستین مقایسه میشه مثلا میخوام به 20 نفر فان بدن بعد دیگه رو میدن بعد تو ک بود چطور بودیم ای که فرستادی این ای ای که فرستادی؟ رزومه خودم که خیلی معمولی بود یعنی در معدرلم که چهارده و هفتاد و ۶ بود بعد تافل هم 2 بود. بعد دیاری هم دادم چون یه ذره معدلم فکر میکردم پایین بود جیاری دادم که شاید یه مقدار کاور کنه معدلم جیاری هم زیاد خیلی بالا نشد کن خیلی معمولی شد بعد خب دانشگاهی هم که پذیرش گرفتم دانشگاه خب تاپ نیست و آلمان دانشگاه معمولی ولی خب من راضیام مهم نیست ولی <تصفيق> میگم خوشم من که بر مبنای هدفت که تا هدفت این بودش که چه میدم اقدام بکنی مهاجرت کنی برای فوق لیسانس بتونی اونجا باشی و این کار خیلی خوب انجام داده چون من بعضی رو طرف اقدام میکنه بودن دوستان دانشگاهی تاپو زده یک سال مجبور شده وایسه حتی فکر فکرم سال اول شدی همچین کاری انجام داده آره منم سال اول همچین اشتباهی رو کردم یعنی سه دانشگاهی تاپو زدم تو آلمان همشون امریک شد و نتونستم دیگه بعد سال اول مثلا یه ذره تنبلی هم کردم <تص> منم خیلی تاثیر دیدم ولی خب اش اشتباه بس به هدف طرف داره یکی میبینی مثلا فکر میکنه رزومش فوق العاده است خب اون چشکار نداره بزنه دانشگاه خوب یعنی نمی دی وقتو کلی بدی ولی خب عادت آره مورد من دیدم دلیل ندار فقط بزنم دانشگاه خوب چون واقع بینانه نیست دیگه آدم داداجاب صد خودشو بدونن خب فکر کردم شانسم تو اون خیلی کمه تو این شانسم شاید برای شرط کناگهتا به مراتب بیشتره بیشتر. بعد یه سی تو این فرینده رفتن تو چه کاری انجام دادی امتحان تافل رو دادی من امتحان تافل رو دادم و امتحان جیاری که جیاری اری تو آلمان همه دانشگاه جیاری نمیخوان، مثل مثلا دانشگاه مونیخ و اینا می‌خوان یعنی با هم تافل کافیه بعد بعد مدارک رو ترجمه کنین بعد بگردین دنبال دانشگاه دیگه باید پست کنین یا بعضی آنلاین اپلیکیشن آنلاین بفرسین اپلیکیشنتون رو دونو. بعدم دیگه منتظر جواب با این و وقت گرفتن سفارت و مصاحبه و دیگه بیا دیگه بیا آلمان دیگه آلمان در بعد باید. نه. باید. نه یه کار دیگه که ترجمه داشتم فکر کنم یادم درگیر شده بود بس آزاد کردن مدارکتو نمیدونم گرفتن ریز نمرات تو اینجور مسائل خب اونم یه داستانی دیگه حالا باید دانشگاه دولتیه <تصفح> ولی وقت پول بدی دوباره مدارکتو بگیری ولی خب آره. باید پول بدین مدرک آزاد بشه دانشگاه یه راه حلی هست که خیلی از بچه رفتم من اون موقع مدستبان نمیدونستم یعنی دوتا راه حالی یکیش اینکه برای ماهی که منطقه دویی ما میتونیم با معدل با رتبه کنکورمون مدرکمون رو تبدیل کنیم،, تبدیل کنیم به اونی جوری مپ کنیم رو منطقه یک <تصفح> بعد نکته اینکه اگه منطقه یک بیافتیم پولی که باید بدیم برای آزدستاد یه خیلی کمتر میشه. ولو این تقریبا نصف میشه. یکی اینه یکی هم میگه خب سه از بچه ها اینم اغدا... یه راه لگه هم که در واقع امتحان کردن جواب اینم من متصفه نمیدونستم. که میدونین برای یابی اقدام کنین بعد نمیدونم زمان داره جزیتش نمیدونم. شش ماه یه سال اگه کار پیدا نشد براتون مدرکتون رو میدم براتون. میشه. ولی من خیلی شاییه بجابه شنیدم نمیدونم چقدرش درسته یکی بهم گفت من رفتم اونجا طرف از هم پرسید کار کار پیدا کنی یا نگفتم نه میخوام برم آه. اینو من شنیدم نمیتونم بگم درسته باقی شنیدم ولی خب این یه راحلی همست میشونم بعد که... آها بعد وقتی بلیط میلیط گرفتی و خب اونجا خواستیم برین آلمان چیکار کردیم؟ من خاطرم که تو با علی که علی هم تو قسمت یک باش صحبت کردم تو علی با هم دیگه سوار هواپیما شده و رفتین آلمان درسته آره آه... علی هم خواهخن گرفته بود نجوشون جفت اون نزدیک کلین بعد هم منم کلنه دیگه با هم بلیط کلنا گرفتیم. دیگه ما یه دو هفته کل بودیم قبل از اینکه اصلا بریم دانشگاه دیگه بعد دیگه شهر خودش دیگه ولی خوب با هم اومد و خیلی هم خوب بود این با هم اومدیم چون من دیگه تجربه نداشتم بس خارج از کشور اومدن علی داشت و خیلی کمک بود دیگه و دو نفر خیلی کمک خیلی یعنی مثلا تو چه شغلی بودی کاریای کاری ای مثلا فریدگار من نمیدونست اینکه گواهی اظهارنامه مالی باید پر کنی اگه بالای درز رویه رو مخواهی بریم مثلا علی و حالا کلن جزیات ریز دیگه خب من خیلی استرس داشتم چون یه سری مسائل پیش پیشون یه سری مشکلات این تا موقع که از گیت رد بشیم استرس داشتم بعد خب بیرم درم تا موقع که از گیت رد بشیم از سرست هشتم. بعد یه سری چون ولی خب علی بود می نفر هست که حالا اگه مشکل پیش اومد کمکت کنی یا تو کمکش کنی خب خیلی دیگه خوبه دیگه خیالت راحت یه جوری پس جان اونجا هم که رفتی عموینا اومدن دنبالتون در آره، من... چون من... کیج من... ساعت بزرگ همیشه این از حوافه من پیاده میشه چیکار می‌کنی چی چیز اتفاق میفته یه چیز این بحث احسان مالیاتی این جور چیزاره که گفتی تو پول چطوری با خودت بردی پول که نقد نه... نه... نه... گذاشتم تو جیبم بردی <تص> نه جدید چون اینجا بانکا تحریمان نمیشه از حساب باز کرد این ایرانی این مشکل رو دیگه مثلا اینجا من تمام ملیت های دیگه از کشور خودشون حساب باز کردن پولو گاهشن دو حساب ما اینجا پولو گاهشن دو جیبمون آمدیم چقدر چقدر خودت بردی؟ من 8000 یورو بخواد 1600 یورو خودم بردم 8600 یوری و یعنی تو جیبت گذاشته بودی؟ باره دیگه یترال دیگه یه نداری جالبه تازه اونجا یه متعد حساب باز کنم یعنی دو هفته من هر جا این پول تو جیبم بود جارت نمیکردم پولو بذارم و خوابگو برم بیرون اونجا شب میخوابیدم هم تو جیبم و بعد رفتم اونجا برای حساب باز کردن نه هزید نشدی؟ اینجا خب ایرانیان از یه لحظه مشکل دارن چون هیچ بانکی براشون حساب باز نمیکنه به از یه بانک یعنی <تصفيق> <تصفيق> هیچ آپشن نداری هم می‌مستاد میره همون بانکی که واسه حساب باز می‌کنه بعد دلش نمیونه که های دیگه خب میتونن از حساب از کشور خودشون حساب باز کنن مشکلی نیست ولی ما اینجا می بانک می که میایم های دیگه اول میگن که خودتو بری توی شهر ثبت نام کنی کارت اقامت تو بگیری بعد م حساب باز کنیم فقط یه بانک اینجا هست که این شرایتون نداره باسه دانشجوی ها حساب باز میکنه که مام رفتم هم اونجا یعنی در واقع چون تو نتونستید کارت اقامت تو شهر رو بگیری میری سراغ اون بانکه آره چون قضیه اینه که میخوای بری کارت اقامت بگیری ازت حساب بانکی میخواد آ قضیه مرغ تمغ میشه فقط یه بانک اینوااست که این نمیخواد میتونی همجا باز کنید ایرانی ها هم میران که دانش چواری؟ اسم بانکر رو میدونی؟ بشپارکاسه چه سخت اسمش <تصفيق> <تصفيق> آم... خیلی پس میرون اونجا حساب باز اینا رو کی بهت گفتش؟ اینا رو غضیه بانکو یا کلن ا... این همه همه غضیه بانکو غضیه بانکو نیم؟ همه همه نمی... هم رفرنس هست چیم؟ آره، رفرنس هست یه چیزای خونده بودم یه از... چیزایی من قبلا تو اپلایار بود خونده بودم و علی هم خونده بود حالا با اكتر روزمون رو شیر کردیم یه چیزایی میدونستیم ولی خب من نمی‌دونستم اینجوری انداز سخت بدین ولی خب اینجا اومدم چند تا دانشجو ایرانی بودن از اونها کمک گرفت کن. آها فارسیات کمک کرد برای ولی اینکه راه بیفتون زایم آره من چیزم زایم باقیمانده اینم از این کلیات قضیه مهاجرت اگه نکته دیگه نداره قسمت بعد بریم راجع ببینیم زندگی تو آلمان تو مدتی که بودی چطور بود زایم نکته بریم فقط صحبت When they're tortured and scared you for 20-odd years And then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is A باید قطوهش میشه تو اینترنت خودت یا اینترنت خوابگاه هره؟ نه خوابگاه الان من نیستم از خوابگاه من خونه گرفتم آها آه خونه گرفتی نه. خیلی خوب شد گفتی بپرسم از سطحه خب وارد بخش دو سوام میشیم خب آقا آلمان چطوره؟ آلمان خوبه <laughs> سلام میبیسیم ولی خب حال بسته که به چه جنبه ای دارید <تصفيق> از که نظر ترین جواب <جمعه> ممکن رو دارید <تصفيق> خب باید کشفا الان تو کجا ساکنی؟ من تو کبلنس خونه گرفتی؟ آره ترم اول خوابگو بودم ولی خب اینجا یه ترم خوابگو میدن بدانش شوی تازه ورود <تصفيق> بعد دیگه ترم بعد باید بگرید نبال خونه دیگه اینجا اینجوریه بقیه جب مثلا آخرین کردی است کلا بهش خواب دادم. خونه بعد چطوری پیدا کردی؟ خونه یه سایتی است که این برای سرچ خونه است. یعنی شما شهرتون انتخاب میکنیم بعد دیگه لیست خونه‌ها رو میاره. یعنی اینجوری نیست بونگا. یه چیز بونگا آنلاینه دیگه. یعنی هر کس مثلا تو خونه‌ای داری یه یه اتاق خالیه یه خونه‌ای داری, خونه داری دوتا اتاق داری یکیش خالی. این آگهیش میذاری تو این سایت؟ من میبینم میام با هم حرف میزنیم؟ مگه تو ما رو دوست داشتی؟ من را میدید الان آها آه تو هم خونه داری؟ هم خونه دارم. دو تا هم خونه دارم. آه کجا آلمانی انجا افتادیم. یه پسر با یه دختر آه چه, چه زندگی عجیبی باید باشه؟ آخه عجیب که زیاد نمیفهمیم چی مشکل نمیخوری؟ از چه چه میتونم ما ما تو خوابگاه با هم بودیم خیلی با هم مشکل داشیم خاطرمه از همه مشکلت نه اینجا خوبیش اینه که هرکس اتاق خودشو داره حالا اگه ما اونجوری توی اتاق بودیم که تا حالا بار بردوه میشون اونجوری که ما زندگی کردیم واقعا یه ریکوردیه یعنی حسابه بگم نکنم اینه تو مخیله چونم بگوندی بتونم اونجوری زندگی کنم نه حالا کلا با آلمانی چطور کنار اومدی؟ نه اومدی؟ ارتباط میتونی برقرار بکنی؟ والا نه راستش <تصفيق> من هنوز اون چنان تالا باز این دوتا هم خونه ایم چون رشتم هم که 95% خارجی هم یعنی آلمانی یکی دو تا بیشتر نیست که اونم اکثرا سرشون که کار خودش میده من اونم با هم میگردم بعد هم نه اونجوری بایم با با با کسیم رفق آلمانی داشته باشه اینه نه هنوز اونجوری نتونستم برم تو جمعشون از خواست یادم ما این مغزیه اهمیت نمی دارم <تصفح> <تصفح> <حتیم> مشکله برای توی این کشور زندگی می کنی باید سعی کنی باشه مرتباط برقرار کنی ولی خب حالا فردان کمتر از یه سال اینجا نشده. نشود متوجه یه چطور آزبان آلمانی رو در چه هده الان درصد بابا عبدت یه ذره کمتر پس ترتیل ترتیل درید تو داری اونم میندازی به نظر آره دیگه کار نمیخوام یه جایی مثلا میری تو پاکام بنده خدای حق دارم یه که باشه من دست و مهاجرا آلام بنده خودتی نه نه تو دست مهاجرا بودی خب آره بعدم نکته‌ای که خب من فعلا واسه درس اومدم اینجا دیگه اگه من بخوام اینجا بونم آره خوب حق داره من باید یاد بگیرم ولی خب معلوم نیست خب من چه رسونم بعدش بخوام برم می کشور دیگه برای چی آلمانی رو بگیرم از خوب زبون بلد بشی و بلد نخوری ولی خب زبونشون انصافا سخته. <تصفيق> بعد هم من فعلا وقت نکردم بشینم یاد بگیرم باید حتما فشار دادم بشینه وقت بذارم من سخت دادن زبون آلمانی رو زیاد چنیدم سخت بود من اصلا نمیشه رو خوند. آره یا یه عادت بدی دارن خیلی عادت دارن واجه ها رو با هم ترکیب میکنن کلمه جدید میسازن مثلا یه کلمه میبینی 25 حرفه بعد میگه این چیه بعد به خودشون که میگی, میگی آه مثلا این ترکیب این 4 تا کلمه هست و الان میگونم آره مثلا این راحت بید ولی خب امی کن مثلا این بشنوی تشخیص میدید این داره را جبیه چی حرف میزنید فالته مولد بودن زبونه نشون میده ها که چه زبونه پویاییه آره خیلی پویا خیلی بسیار پویاست با خارجی ها بیشتر می‌گردی آره با خارجی ها دیگه بیشتر میگردم با میگم مدیات که آلمانی نیست چون میگم اصلاً نداریم آلمانی تو گراسمون یکی دو نفر بیشتر نیست اها تو سه تا برقرار بکنی چطوریه با کیو فهمید بچه‌ها آره تو منم بعدتر بگم به شنوندگان که تو کله علاوز اجتماعیم میشه گفت نسبتاً درونگرایی آره. برای همین فکر نکنم خیلی مثلا بودی پلیز بی مای فرند از این جور نه ولی خب راست میگی ولی خب من چیک میگیره دیگه برا شما تو یک کلاس درس میکنیم روابط چیک میگیره دیگه حالا یه سری حالا خیلی اجتماعی هم مثل خودت روز اول رابطه کنه چه میزنن یکی مثلا هم مثلا سمتول بیشه ولی خب در نوایت فکر میگیده متوجه بعد یه چیزی با ایرانی ها تونسته اون جرتا برقرار بکنی وضع تا... تاعمالت با ایرانیش به چه صورته ایرانی ها اینجا دو دستان اونا که دانشو اونایی که تنهانده میان اونا که دانششون هن خوب ها. اینجا مثلا خب دانش که ما اصلا کم داره ایرانی بکنه هشت ولی خوب کردم غیرش دانشچو غیرش خوبه و دام باشه میشه خیلی بانگی کمک میکنن خوبه مثلا ارلينا یه کی <coughs> ایرانی ها دارن یه چی میگم یه گروه ایرانی دارن توی آخر خیلی مناسبات های مختلف جشن برگزار میکنه خیلی کمک میکنه دانشجو میگم این غیرش خوبه ولی پناهندو به خصوص اونه که به خصوص که نمخصوص نم. دایره که جدید میان خیلی هاشون علامه ناجورتوشون زیاد داره علامه که اصلا غیر قابل اعتماده یعنی ما ترجیح میدیم که ندونم ما یعنی تو که هاون کمار میبینم تو مثلا چند بار برخورد داشتیم تقریبا جربه هست شد دیگه نگم قشن خوب نمیگم همهشون شون بدن رو نمیتونم قضاعت کنم ولی خب خیلی هاشون مقدار قابل توجهشون قابل اعتماد نیستن دیگه رو با قابل اعتماد نیستن یعنی جهر رو شد باز؟ طرف شروع کرد بالا باسه دو مورد پیش آمد بس ما همین تو همین نوما ها بلا بسه من که پیش نیومد بلا باسه بچه ها پیش آمد که توسنم تو خیابون یه ایرانی رو دیدن بعد بزران بچهش بود آدرس میخواست گفت نه آره تو ایرانی هستی شروع کردم بلا باسه کمکش کنم برالله اونم غریب بود دیگه بعد شروع گفتی شما از کجا اودین بچه ها گفتن دانشجویان اینا بعدشرکت مسخره کردند حالا آره دیگه پول دادی اومدین اینجا اشغال و ما بدونم بیچار شدیم و اینا این پول ما رو شما خورردین از این بحث بعد دیگه یه دوسه مورد از این واقعا واقع بحثاب میشد تو همین مدد کوتاه دیگه خب بچه تصمیم گرفتن دی هست هم بزن خکنونه رو به اون روکس ایرانی هم دیگه میم دانشجو خیلی خوبن ولی خب این رشته پناندگی جدید اومده. توشون خوبم هست و توشون بدم خیلی است متوجه ال آنجا و پناهندهکنن چطوریه <تصفيق> ؟ خب خیلی پناهنده گرفتن دیگه همین شهر ما مخصوصا خیلی پنانده گرفته و همین قضیم هم خیلی اعتراض درست کرده که یه ذری ویه ب ذره ما هم میشه که چ اینجا دانشجویم چون بر تو, تو قیابون که روی پیشونی ازم ننووین این آقا دانشجودی یا بر قیافم خیلی جامعن شده که قبلش یه غذابات دیگه راجعه ما, با... ما کردم ولی به مرسی اینکه گفتیم ما دانشتریم نظرشون عوض شد یعنی این هم واسه من پیش آمده هم واسه بچه ها پیش آمده که وقتی میگه دانشتری دیگه بای دیفالت طور پنهنده پرز بکنند وقتی میگه دانشتری کلدم برخوردشو عوض میشیم بعد خب آدم یه ذرم حق بیده بهشون وقعا این همه خارجی یه وارده کشور بشن شد سخت باشه ولی خب من نمیدونم ولی کار درست چیه باید چی کار رو میکرد ولی خب هست که این غضی تأثیر نه تو زندگی مایم ما که پناهنده نیستیم تأثیر میداره الان اونجا یعنی عرب و سوری اینا زیاده هسته چطوره؟ همه میدیت ها از ایرانیش میگم خیلی هست عرب و سوری اینا میگم هم همه میدیت هست خیله خب ام... یه چیزی اونجا آبه هوا چه داره؟ آبه هوا زمستون خب نه سرد میشه اینجا زمین که خیلی سرده نه به اندازه مثلا شاید کانادا یا شمال اروپا ولی خود سرده نسبت به ایران ما عادت نداشتیم. تا به ستونشم بعض موقع مثلا بعد یک هفته شاید مثلا هوا بشه 30 درجه زر غیر قابل تعمل میشه ولی معمولا هوا خود مثلا علایه هوا سرده تقریبا. <تصفح> ولی خب نکته‌ای که غیر قابل میشه اینه که اینا چون این کولر ندارن هیچ جا نه تو اتوبوس تو کلاس هیچ جا نداره مثلا یه ذره هوا گرم میشه میگم یه ذره غیر قابل میشه ولی معمولاً اونقدر گرم نمیشه اما اونجا ابری بودنش چیه ابری بودن زمستون که خب ما آفتاب نمی‌بینیم تقریبا نه مثلا به اندازه کلاً ابری باشه ولی خب 80 درصد مواقع ابریه ولی تابستون خوبه تا باید به سابقت که تو قایم شهر داشتید موضوع خیلی بکنه نه ولی خب میگم ما قایم پولر داشتیم دیگه مثلا اینجا شرگی سی خورده بعد مثلا هوا که میشه 34-35 یه زرادم ازیاد میشه ام، یه موضوع دیگه بریم سراغش اینکه الان اونجا تو کار میکنی نه ولی خب دارم دنبالش میکردم بعد حزینه الان چطوریه چقدر هر ماه تقریبا حزینه می‌کنی؟ حزینه ها بسید به کیفیت زندگی داره یعنی بسید خود تیوری زندگی مثلا زندگی سگی چقدر حزینه زندگی یه سگی که ما داریم نقل شوفه میکنم اونجوریست به اون حتی سگی نمیشه یه استانداردی ایل داری من 600 تا در مخارج میکنم با توجه یه ذره ایجار خونه هم بالاست البته یه چیزی از همون 8600 تایی که آهوده داری استفاده میکنه یا اون برای بمونه بس... نه اون اصلا برای همین میخوان که بدونم تو سال اول که میای پول لیم بعدی چیز تو الان حق کار داری؟ آره دانشگاه کلا کلان حق کار دارند 120 روز فول تایم در سال یا فکر کنم 220 دیویستو... روز 120 آره. روز فول تایم و 240 روز پارت تایم تو بازار کارش گشته چیزی ببینی چطوریه؟ آره مخصوصا یه ما اخیر خیلی گشتم والا بسته به شهرش داره. مثلا تو مونی خب برلینین شهرای بزرگ خب کار ریخته. اصلا مخصوصا تو کامپیوتر که خیلی کار هست تو زمینای مختلف. ولی خب شهر که یه ذره کوچیک میشه یه ذره گزینه‌ها محدود میشه. <تصفح> مثلا من به طور مثال اینجا مثلا اکثرا کارا یا با جاوا یا پیش پی اچ پی این کار برنامه نویسی با جاوا و پی ایچ پی ای یعنی قالبش همینه بعد بعدش مثلا جاوا اسکریپ تو اینا مثلا من جنگو گشتم برای بکند دوشهر خودمون که کسی هیچی پیدا نکردم شاید مثلا تو کل که یه زشهر بزرگی همستم شاید دو سه تا پوزیشن پیدا کردم ولی خب مثلا تو مونیخ و برلین خیلی داره ولی خب میگم کار قالبش اکثرا برنامه نویس پی ایچ پی و جاوا و جاوا اسک جواحت اروپا خیلی میسن که هواخاِه داره. آره. پس اگه یه مقدار بگردی احتمالاً در زمان پیدا کردن کار مشکلی نداشته باشی. یه مشکلی خودم داشتم اینه که اینم نوشم دارم اینه که من خو تجربه کار نداشتم، یه ذره اذیت می‌کنه. اینکه ما تجربه کار نداشته باشیم بخوای پارت تایم یه جو کار کنیم، خب طرف انتظار داره که کسی که پارت تایم کار میکنه یه چیزایی بدونه. بد <تصفح> برای همین ما خودم تو این یه ماه دو ماه اخی شروع کردم حالا یه سری فریم کار کردم یه سری پروژه برای خودم انجام دادم که یه ذره رزومه پر کنم بگم من این تجربه یه تجربه واقعا به دست میاره دیگه یعنی کسی که میخوان بیان اگه مثلا یه شیش ماه یه سال قبل ازی که بیان کار کردن تو ایران خیلی به درشون میخوره ما نمیدونیم خیلی این نکته ما نمیدونستیم این قضیه الان به زهرم تموم شد ولی اگر خب میشه ولی کار پیدا کرد ولی خب اگه تجربه داشته باشی که اصلا رو هوا همون یکی دو ماه اول میتین کار پیدا کنید اصلا مشکلی نیست. آره چون تو مثلا از سمت دولت یه یکی آدم اصلا دولت اومده بود یه آمار میداد میگه 60 درصد آلمانیا میرن معلم میشه ولی همونجوری آمار داشت میگفت میگفت قلهش 8 درصدشون میرن آی بعد یه نقشه آلمان نشون داد از میزان نیروکار کار که میخوان توی آلمان تقریبا به از یه ایالت تمام ایالاتشون تو وضع به قرمز بودن یعنی به شدت نیروگاه رو اییچه می‌خواستن واسه همین شما اگه اینجا درس بکنید تجربه کارم داشته باشین تو ایران میگم صد درصد کار پیدا می‌کنین اصن شک نکنید گفتی دانشگاه الان چه شرطی از دانشگاه شرط دانشگاه خوب از نظر قوانینش فرق داشت با دانشگاه خودمون روند قوانینش بهتر البته مثلا یک از که خیلی جالبه اینه که مثلا شما توی یه درسی رو شرکت میکنی بعد میخوای امتحانشو ندیم مثلا میگی من این درستار آماده نیستم یا یعنی اصلا دوست نداشتم درستار رو میتونی امتحان ندیم این درست توی رزومت نمیه و یه نکته جالبتر هم این که داره اینه که اگه یه امتحانو دادین افتادین دو بار تا سه بار شانس دارین دوباره اون امتحانو بدین می توید امتحان دوم برداریم اون نمره قبلی هم پاک میشه، نمره دوم میاد توی رزومت این خیلی جالبی بسنم دقیقا التماست میکنن یه جوری درست پاس کنی با این نمره خوب مثلا این سیستم اگه توی بود خب ما ده سالم لیسانس رو دمام نمی کردیم از این هم از این هم نگاه <تص> من خیلی ارامی بینم که مثلا نگه میدارن نه و ده میکنن خودشون رو من خواهد هم می خواهد میکنم که خیلی خیلی که منم جز میتونم چطور بود؟ به نظرت خوب بود؟ تصمیم خوب بود؟ تصمیم خوب میگم می بس باسه من جواب داد جواب که نزد اون موقع چونست هدف نذاشتم ولی خب باید ببینین هدفتون چیه دیگه مثلا ببینی اگه نیاز دار آدم به یه سال اضافه تر در اون یه سال میخواد در اون ب... یه سال خاصی بخوری آره من یه سال بازی راستی بس سروازی میخواستم بخورم من که علیت خواستی نبود <تصفح> داشتن فکر میکرم اگه سربازی نبود تو چقدر مسیبت فرق میکرد آره بینید خیلی از انگیزهای زندگی من همی سروازی بود دی. خیلی تصمیم گرفتیم سروازی توش نخش داشتیم پس الان به صورت کلی دانشگاه رازی چون بعد فشارش مسیر قسمت قبل که تو ایتالیا باید صحبت کردیم مثلا که خیلی تحت فشار بود از سمت دانشگاه تو اونجا چطوریه نه من مشکلی ندارم یعنی فشارش خیلی غیر, غیر قابل تحمل نیست سخت به درسه خورده حالا بسته به رشته داره مثلا رشته میزرینگ این خیلی ریاضی زیاد داره میگم ولی خب مشکلی نیست اگه میشه آدم هندلش کرده رو چه غیر قابل تعمل نیست بعد دقیقا حالا من رو برقی اجاره نمیدون تو دقیقا الان گرایش چیه؟ من گرایشم ویب سایس ویب سایس تو یکی دو جمله نمیتونی بگی چی کار میکنی یعنی؟ وپس رجوعی نی که کردن رجوعی اینکه و به چجوری آنالیز کنیم چجوری و بیتیروال انجام بدیم بعد جنریتیو مدل از روشون بسازیم یه نت فورک اگه داریم چجوری دیتا ماینینگ روش انجام بدیم و با یه قسمتی هم سام انتیگر. این از این این قسمت هم جمع کردم قسمت بعد تو قسمت آخری مقدارش کلی تر از دو فرستم رجوعی شرایطو. کلا یکم نگاهت. اگه مشکل نداره بیرون قسمت آخر. نه مشکل هست. <متصفيق> خیلی خوب وارد قسمت آخر میشین قسمت یه وقت هم حسابو کلی طرف بیا بپرسم آقا د... ایران چی مشکل چرا پاشو درستی خب خیلی سوال کلیه خیلی عوامم دوست نقش داره مثلا یه چیزای شخصی این که غالبا به حال میگه میگه برای آدم زندگی می‌کنه که دوست داره زندگی با کیفیت داشته باشه، حالش نظر منه. و اینکه دوست داره حالا من چیزای شخصی دیگه هم خودم داشتهم اینکه آدم دوست داره دنیا رو ببینه، تجربه داشته باشد توی یه فرهنگ دیگه، کشور دیگه، زبون دیگه. اینا هم می‌خواستم این تجربه داشته باشم و اینکه خب ایرانم شرایط خیلی سخت بود واسه من در چون من حساب کردم ما گفت مهم درسم تمامش می‌شم 11 مثلا 26 27 سال. بعدی که بخوام دو سال برم سربازی میشم 29 سال. یعنی بعد 29 سال 30 سال باید از دانشگاه بیام بیرون میشم یه آدمی که هیچ هیچ تجربه کاری نداره، تازه از صفر باید کاریو شروع کنم. اونم فقط کار تو کامپیوتر، نه اینکه جای دیگه نیست، ولی ایت خب 90 می درصد میدونم <تصفح> <تصفح> تو تهران دیگه. با خودم من زندگی تو تهران اصلا دوست نداشتم چون یه واقعیت اینه که اگه تو تهران سرمایدار اگه نماشین تو تهران زندگی کردن خیلی سخته وقتی که اون تلف میشه اون آلودگی که اونجا هست واقعا تاثیر میذاره رو کیفیت زندگی یعنی من خودم دوست ندارم خب مثلا حالا میخواد چه میدونم سال 60 سالا زندگی کنه اینجا تو این دنیا حالا با باید زندگی با کیفیتی داشته باشه دیگه حالا اون ارزش نداره حالا یه بار آدم زندگی میکنه اونجوری زندگی میکنه این که دیدم خب یه این فرصت دادم تو یه سنی سن میتونه ماجراجات کنه بعد یه سن آدم میذاره بره بالا چون یه ذره سخت دیگه ریشه پیدا میکنه اونجا دلباستگی پیدا میکنه به تو این سن ولی خیلی خوبه یا حتی پایینتر علی مام دیر مایه دید اه... یه بار یه... در واقع یک شانسیه که یه بار حالا یا انجامش میده یه نفر یا نمیده من تصمیم گرفتم انجام بدم حالا برنامه دارید برگرد ایران ولو فعلا که نه اصلا بهش فکر نمی که برگردم <تصفيق> <نه> اصلا بر... فکرم <تصفيق> بهش نه اصلا فکر نمی چون دلیلی نداره اگه برگردم یعنی شاید یه موقعی اتفاقی برای تو برگردم ولی خب اگه برگردم وقت هم دیگه ای به خودم هم وقت هم که بازی باشه یا رقاقتی باشه ولی خب این هم تلاش میکنه ازینه میکنه حالا مالی ی میذاره وقت میذاره باید ب برگردی خب هموق هم میمونید تو ایران چه کاری بود به نظر تو ایران باید ملت رو چی کار بکنن چی رو باید سعی بکنن درست بکنن تا تبدیل بشه به یه جایی که یه نفر وقتی از دانشگاه بیرون فکر روزایی داشت نبشه که پاشه بره خارج از کشور علاقمند من باشه بشین بمونه همینجا کار کن اولیش که ملت زیاد تأثیر ندارن دولت و دولت حکومت که باید شرایط کار رو درست کنه مثلا وقتی میخونی آمار رو میبینی چه درصد تا... مثلا آمار بیکاری چه درصد همهشون تحصیل کردن توی کسایی که تحصیل کردن نیستن آمار بیکاری زیر یه درصد باید ایچه آمار روی میخونی باید, باید یه ارتباطی بین دانشگاه و سنت ایجاد شه. این قضیه سربازی باید قضیهش حل بشه یعنی اه... خیلی میگم خیلی مشکلات سربازی کار نیست با ارتباط ندارن. یعنی ما یه مش چیز تئوری می‌خونیم بعد نمی‌دونیم اینا رو کجا قرار واستفاده کنیم فقط فقط قرار مقاله آیسای بدیم مثلا رنگ دانشگاه بره بالا یا رنگ استاد بالا یا چی رنگ خودمون بره بالا. هر چی میگم هدف نداره دیگه هدف فعلا یه مش رنگ درست کردن و یه مش مقاله دادن و این که ملت رو سرگرم کنن حالا یه چند سال دیگه ملت کار بخوام هی برو دکترا برای چی خب همه با دکتری فولیست اصلا برای چی باد همه ریاضی بخونن من اینم نمی‌فهم یعنی این, این چیزا که از طرف حکومت دولته هرچند این طرف داره عوض میشه آه. یعنی داره عوض میشه دیگه همه دارن میرن پزشکی میخونن چون میدونی به نتیجه رسن است مهندسی پولی در نمیاد الان مو که مهندسه خوندیم ما که دوستام آدم فقط فروشی دارن کارگراش مثلا گفت خیلی خوب دارن کارگرش در میارن. آخه خوب تو آخه خب کار درستری انجام داد رفت رفتم ولی کاری که کرد... جدی میگم، ما شاید اشتباه کردیم. ما شاید کهن مقطعا اشتباه کردیم. <تصفيق> بس اینه که خب اون از سمت دولت و حکومت این دست مردم نیست، ولی یه چیز یام دست مردمه این که مثلا پدر مادر رو بچه‌اشون زور نکنن، آقا تو حتما باید بری ریاضی، دکتر، مهندسی بذارم. بچه برود دنبال چیزی که دوست داره آقا شاید این هم تو موسیقی استعداد داشته باشه شاید این هم تو ورزش فوتبال استعداد داشته آقا چرا همان قد مهندس بشه نه بس پول نیست بس که تو ایران مهندس شده بس پرستیجه که البته اون پول هم بس پرستیج میاره بس کلن بی خود درس خونده ولی نه بالا بی خود کلند که همه بخوام برم فارد از اینکه طرف چی دوست داره به چی علاقه داره تو چی استعداد داره حتماً برم مهندس من این اینم باید از سمت مردم این هم کار کنم رو خودشون این درست شد مردم که بگم یعنی خود ما خود ما هم باید اینو تو زندگیمون در واقع دخیل کنیم اطرافی زور نکنیم بریم مهندس شد دکتر شد اگه ما خودمون درست کنیم باقی مردم هم این ما دیگه و جامعه از ما تشکیل هرکس خوش درست کنه جامعه درست میشه ولی خب دو طرف هست یه راه دو طرف است یعنی هم از سمت بالا باید اصطلاحات چند از پایین نمیتونیم فقط باید فقط مردم باید خودشونو تغییر بدن یا فقط حکومات باید خوش تغییر بدن حالا الان به نظرت تو مسیر خوب و درست داریم حرکت م الان به نظرم تو مسیر خوب و درست این سوال نمیتونم فلان جواب بدم. یعنی yani امید دارم که درست باشه ولی منطقه میگی که مسیر درست نیست یعنی پس اینکه آدم امید داره که این درست باشه جواب بده و این تلاشایی که کرده این که داده ولی خب همیشه دل آدم این چیز تاریکی هست که میگه جواب نمیده دیگه مثل بقیه روش هم خیلی اموالی آقا خیلی جمعندی خوب بود کلیت خوب گفتی توضیحاتم خیلی کامل و جامعه بود خب. یه بخشی رو گفتی که علی تو قسمت اول باید صحبت کردیم اصلا بهشون اشاره نکردود ازت ممنونم خواهش اگه نکته دیگه نداری دیگه نه بیدیمان. مقتصف نیست دست درد نکنه برحال از مام چند تا سوال پرسیدی وقت گذاشتی دیگه موفق باشی ممنون است که اینقد خیلی خوب پس اگه کاری نداری خدا نگهدار Working class I wish something to fear If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me